همیناوی احمد فکران از اون خود محل کلام ما شغلت خطبایی بود لیکن سبین متدخل ما یه مقدمه راجب اقسام شغلت رو مطرح کردن از اسم از شغلت شغلت و اشکار در روایی اون سودن به نظر سلمات از ها مراد شکرت رواییت به لحاظ کسرت روایت در مقابل حدیث شاد حدیثیست که غاویی زیاد نیستی نقض یادو ندارد چون شدون در روایت گایی روایت به لحاظ خود روایت به یعنی به لحاظ مضبون روایت گاری اوقات به لحاظ راهیه روایته سرگر کنانکنانی حدیثش کنانکنان حدیث صحیحه لکن شاده این مضمون شازه در کتب اهل سنت اصطلاق روحاید یه توضیح اشمالی بید مثل ما نیستن ما در تعریف صحیح کردن در این از زمان الله مطرح شده حدیث صحیح این مجموعی که تمام سنده امامیه و ممدود موثب ممدود شوهی نیز موثب به عدل برابر مشهور یا موثب به عدل. باید باشه اما سنده امامی باشه در اصطلاح اهل سنده همه باید عادل باشن حالا به صحبت که از اون ادارته و اضافه بر این اضافه رو ما نداریم این فرق بین ما و احل سنت اضافه برمون خالی از شذوز باشه این قید قرومه از شدوز داره تربیه خودشون خلاعن شذوز، این در اصطلاح اهل سنت هست ما نداریم به رفت این موشد رو بوده برخور کنیم به رضا روان خبر روبات سقه هست سقه هست اضافه نمیگنه این صحیحه موسیقی من از در مصابران ما مقاردی روزدادین دیدم مثلا پس که از توسو علمای ما آمده که خلانه گفتی این حدیث رجال رو سقا این حدیث سمیه من سنت که دادن که شما از ما سلم اشنا نیستید به اصطلاح, اصطلاح چون جور در اصطلاح احل سنت مجردی که جاید استقاق باشه یا باشه کافی نیست باید از شدود هم خالی باشه این خلوت از در ما شرط نیست اصلا علامه اصطلاحی در خلاف وقتا گفتن علامه اصطلاحی رو برده در ما اهل سنت میگیم فرقش اینه در خود و اهل سنت حدیث صحیح اضافه بر اینکه که جنگی رباطش باست سقاط و قدومی باشن اضافه بر او باید اشت هم خواهی باشه مراد اشت در اینجا حضوز مدمونیه یعنی مضمونش چیزی نباشه که شاس باشه ما در کتب ما از زمان علامه این اصطلاح آمد اصلا قدید ما کلمه صحیح به کار که به این معنی نیست اما از زمان علامه که این اصطلاح حدیثی پی این تید خل و شدود رو ما داریم در فهمیدیم خوبی بکت بکنیم باید بخواد بزن این ها یکی حدیثی میگه رجال و رجال صحیح. یعنی و سریع حتی مثلا سید و موسیم خب شون میگه رجال و رجال و سریع ها من اسم هم هست از بزرگانشی در این که در در بحثه کلامی با اهل سلت نرشن یا که بخت ر پس این حدیث صحیحه اونا ما نه حدیث صحیح نیست این دو تا با هم اشتباه نشد. دو تا من, من, ما درس با من اونو نکنه. و نمیگم ما در صحیح با معنی اونو فارغ می کنه شد شذور نمی ما این شرط رو در اصطلاح حدیث نمی آوردیم به اضافه به که که اصطلاحشان در باب شاذ حدیث شاذ رو به رث رو یعنی حدیث شاذه حدیث شاز. حدیثی نیست که مضمون شاذ باشه اولا باید سند صحیح هم باشه. اینو خوب به قطعات ما معلوم نیست نقصه هست کردن بخواست این روایت ما معلوم نیست داره چون این اصطلاحات که ما نداشتیم برزباه و ما گرفته هست که هم اصطلاحات اهل سنت رو میگیم مثل در, در معلوم نیست ما این اصطلاح رو در روایات ما با کار شده سؤال رو اصلاح کنگه این حدیث چازه شرطش اینه که سندش معتبر باشه ولی اگه ضعیب باشه ضعیب دیده کاری به شدوز ندارن حتی به شدوزش نگاه نگه به قرار این اصطلاح وقتی میاد حدیثون شاد حدیثی که سندش صحیب باشه وقتی مرمون شاده و ناظره اون رو بشنید شاد و لذا این سوالم اینجا هم به این منصف چون من نیده در کتاب اصحابه در آن این هم خواهبا به این بحثش ه چون در اینجا امانا خود به مشهر بین و بیاده اشعاد در ناغه اون این کلمه اشعاد از این کلامی در کلامه مهم صادقه بزن قبل از این اقاض اصطلاح معروف به نهر سنت مراده اشعاد در کلامات مهم صادقه همون معنی اصطلاحی بعده بس مراده اشعاد دقیقه فرمونو یعنی امام میفرموند اون حدیث اشعاد درست صحیحه لیکن <تصفيق> این شاز و ناظر و اشتحاری که در اینجا اخت شده به لحاظ راویه اشتباهشه نه به لحاظ مضمون این دوتا خب خلف نکنیم شرح وارد بازده باشه بله به لحاظ کسرت راوی و علت راوی در کتب, کتب حسول اصول تو محجیه ها بفردن پس اگر حدیث شاز باشه مضمونم اون حدیث اصولاً سعیح نیست اصولاً سعیح نیست و رجال است استفادهاتشن از جللا اون حدیث سیح نیست این ک از روش را تعجه مثل رژال ررجال میگن سیع ما بیام ررجال او ژال و سیح نمی همیز سرییم این رادیده باشه بود این میه فمیج این است ممکنه در رجال صحیح باشه اما حدیث صحیح نباشه شود بله بله بعد از خوبش عمل هست همین این عمل کردن عمل نه نه اصل این حدیث از اول صحیح بوده اما مثلا عملی بشه چه شاز بوده نزد، آرو که میگن قبول میکنه بس. اون حدیث صحیحی که آرو مثلا میگه ممکنه شاز باشه به معنی که یکی مثلا صدوق فرآورده، شاذ حدیث صدوق کنه عمل کرده مشهور عمل نکرده. یا شیخ تنها آورده، غیر شیخ نکرده. این شاذ، این حدیث شاذ، حالا غیر از رواه به لازم مرجو، لكن شما چون سند معتبر کافی برامون. این غیر توی صحیح چون که اصلا دنبال به ساقت دنبال این قید نیستن که مضمون شاد راشد برحال این راجع به یک شرح توضیح اجمالی نفت برگردیم به توضیح حدیث ارز کردن از, از درنهای نه و دهم هم تقریبا حدیث آماره ننظره تو بحث اصولی تو تا آرز قبلا نه تو تا بین این حدیث تمسک نشده و این بحث مطر شده با بازارت بین از کار ما کمی الان دوست خو میا به نظر ننشن به نظر آگو توی بحث تاوز این اشالو نمیکنن و توزه مان لاغ اینطور ما نسبت نمیدن در اینجا ایشان هم شوهر رو که جییروس تو زیریمشون مطرح میکنن که آیا حدیث تو مقام اشتباه و حجب لا وجده یا تو مقام اینه و این توضیح دیدیم که اشتباه حجه و لاحجه یک باب تعارض حجه این باب دیگه و نتیجه هم این طوره. در اشتباه حجه مثلا امام یا روایت متعرض تمیز حجه میشه لیکن در تعارض متعرض ترجیح در حجه این میشه این با هم دیگه پس تمثب به حدیث هر این است که در تعارض باشه ایشون مطمئن شبازه در نازره اینی که در مقام اشتباه الله لاحجه است که اون شازن ناظر حجه نیست و خود مشهر رو بین اصحابه که این المجمعه لاره بفی آید بیدو تمثل به این المجمعه لاره بفی که این در مقام حجه البته باید در نظر گرفت مطلبی رو که شما فرمودن ممکن است یعنی این مجمعه لاره بفی کافی نیست که بگیم این باب حجت بلا حجت هیچون محال بپردن چون ممکن است بگیم لاربیفی در اینجا لاربیفی این اضافیه چون گمده در نادر خود به مشته هر فعنه زادرش فعنه علت برای هر دو باشه افزن رو مشهور و ترک شاز او دفت بکنیم هر دو با هم نقصش اینه که این من مجمله لاره بفی لاره بفی یعنی به اضافهی به اون خبر لاره بفی این یه دو بگیم این من مجمله لاره بفی اینو تحبود شرعیه شارع ما رو تحبود داده پس تنابراین ولذا اگر اینجور معنا بکنیم حتی ممکنن تعدیی از این مرجحات منصوصم بکنیم بعضی که از مرجحات منصوصه تعدیی کردن این تسلیم نشد به عبارات نکرده باشم حالا من مضمون کلام یکی از بهترین موارد تذیه همشه یک فعل در مضارع لاری به فی تعبدن دو لاری به به اضافه به دیگه هر جایی که شما دو تا طلب که باشی احد ما احدهما به قیاس به دیگر لاری به اون حجته روشن شد از مورد رقایت تعدیل بکنیم به بقیه مرجعات مثلا ایکی اصح و سنده هر دوست همون سهیه یکی خیلی بزرگان بزرگانه از خبا نه مثلا سهیه خادیه خب اون خبر اصح لا به اضافه بالعضافه این خبر سهیه اضافه پس مراد از لا ری بفیه نه این است لا اضافی یعنی هر دو خبر در مقابلتون بود که اهده همه ممکنه بفیر نقصه هر دو همه رجب بوشن دلها سهر دو سند به اسطلاح معلوم لیکن اهده همه به خیاس علال آخر لاقعی بفیر اهده به خیاس علال آخر اگر این شد بون اون احس بخونیم دقیقی پرمین پس روایت مبارکه رو اینجور معنا بکنیم اگر اینجور معنا کردیم اون وقت میتونیم این رو در باب هم ترجیه در شغلت بذاریم و هم تعدیه بکنیم به بقیه مرجعات غیر محسوسه. از کار مثلا مرجعات در عبارات از ما حالا اگر ترجیه به کتاب و سنت و مخالفت آموم و آقاز آموم چیزی بودیم ها تا 6 بسناس اما از اختلاف نصف اما مرجعات منصوصه مثلا در کتب اهل برد بالای هشترات هاست در کتابه از به احکام آمدی بالای 80 تا از مرجعه ها کرده این رو ما اصطلاح هم محسوسه. خیرمحسوسه مراد از خیرمحسوسه اینا این مرجعه در روایات نیامده به قدر این اشکاله محلوم استاد که از کردن این در کتاب و اصول جهید ما به این تعبیر آمده که یک باب تعاوض رو هجته داریم یک باب اشتباه رو هجه بله و دربابه اشتباه بوجه و لا بوجه ولی اون ظاهرش مثل تا اما تا نیست این خلاصه اشکالی که در این روایت شده که ایشون میفرماید که به درد بحث شهرت هم نمیخوره چه چقدر شد. البته خود ایشون قبول دارن که مشهور بین اصحاب بازم ارز میکنم که مراد از مشهور بعد از قرآن آموده هم این روایت عمل کرد دربابه تا آرزه آرزه نکرد. تو صادره اثر تو باب تعارض نمی ورده کاری برنامه شده است شیعه سوسی اثر این روایت تو باب تعارض ذکر نکرده چون این روایت یک به راهی را برای حل تعارض روایات اهل بیت داده البته بیشترین امر بی این روایت تو باب تعارض در کلمات اخباری هاست چون اخباری ها اعتقارشون به این بود چون مطلع به روش های و شبه معروف رو رو بوده این که روارد تاروز دارن چه کار رو کنن اینا میگن تاروز رو هم به خود روارد حدیب کنیم چون اخبار علاجی داریم اخبار علاجی تاروز رو حدیب کنیم این خلاصه اشکال قصد به اینجا به اینجا اصلا که این مطلبشون اشمالا برد نیست اما این مطلب به نظر ما تحلیل علمی نیست کافی نیست برای تحلیل علمی اونه که در اینجا یا مثل همین تحریر مرموهای آرزی ها بابه اشتبال بجه بالله بجه و بابه تاروز به نظر ما این مطلبی در ذهن مبارکشون بوده درسته اما تحلیل علوش این نیست که بگیم بابه تاروز هست یا با اشتبال بجه الله بجه تحلیل علوش به نظر ما اون چه که باید در این حدیث روشن بشه اون زیر بنا و اصطلاحا اون مبناست که حدیث و چه مبنای گفته شده عمده اینه چون ممکن است زیر م... م... بنا و مبنا در روایت ذکر نشه اما با تحلیل علمی ما بتوانیم بفهمیم که اون زیر بنا و مبنا چیه بسودن چون ما از تحریب مبنا این بود که خبر عقل یا خبر استقا حجت سر بودن. این یک مبنا م... مبانی کلی که تحصیب یک مبنام این بود که خبر عرض یا خبر سقیل حجیت تحب تعبدی نداره حجیت اوهلایی داره یعنی پیش اوهلا باید شواهدی در خبر باشه تا بگن اون خبر حجت یکیش هم به ساقت به ادارت راویه یکیش هم یکی ادارت به ساقت. اما شواهد اهم از اونه باید با شواهد دیگه نگاه بکنه این دو تا مبنام یه مبنامی دیگه که اصلا خبر حجیت نداره. برفردم اگر بخواییم به خبری که ما دنبال مضمون هستیم اصلا کاری به خبر و مشهور و شاز و اصلا کاری به اونجه ما نداریم ما کاری به حجیه نداریم نه به لحاظ تنفذ شرعی و نه به لحاظ سیری و غلائی. ما به دنبال هفوان و مضمونی که در خبره دنبال او هستیم سوالی که اینجا مطرحه این کلامی که بین امام و بین جناب آقای عمرو نهنزله رفت و بدن شده این روی کدوم مدناست به نظر ما راه دردیترش اینه اصلا فرز امام و بحث امام محیط روایت روی کدوم مدناست روی حجیت تعبدی خبره یا روی حجیت اغنالی خبره یا اصلا کاری به خبر نداره دنبال مرزون ها به نظر ما اونی که هست اینه اولا در نظر بگیریم چون در تعبیر تربیران مثلا همه اولش شون گفتیم رو به تما سه بخشون در وقتش اولش که به اصطلاح ما مال غلاقه فقیه به اصطلاح تمام فرم اونز رو الاغت روی نمی کن کسی که حرفا خلال اونا حرام نداره پی احکام اونا یه معامل ها حاکم این که گلد بخش عبرشون بیبرازی نبید اون شهبتی که ما در برس خودشم میخوایییم گفت گفتیم با در توضیح خواهییم مخاطب مخاتب اونزورو کیه؟ اونزور لا رضیره اون مخاطب مخاتب کیه؟ مخاطب آمه چی هست؟ همین عوام مردم یا مخاطب علما و فقه ها هست؟ اونزور لا اصلا مخاطب کیه کی مخاطب به این حدیث ولی زا ما توضیح داشت خلال هم گفتیم برمخواهی گفت خود این حدیث نشون میده که خود با مرد نهنزله بسیار مرد ملاییه یعنی صحبت حدیث صحبت عادی نیست زواهرش اینسان خیار میکنه مراد عامه است، وقتی با تأملاتی که میشه بعد امام میفرمان رواییات یون ذر اما ماغم و پیگار چه وای کردن این لوازم رویی سیاره کلان نشون میده مخاطب واقعی فقها و اولمان هستند. این انظرو یعنی خلما بوده اینو تشکیل میدن. این کیفی نیست که مردم آمده مثل ادالر که آمی مردم تشکیل می‌دهند و آدالر یا آدالیسی دن کارش رو لبی شر می‌کند این مخاطب در اینجا به و نظام تفریعاتش واضحه امام می توانید بیوید که داره میگه خب روایدشون متعارضه امام می توانید اونی که خود به این خود این به مثل رو این خود مخاطب خود خقیهه مخاطب خود آمه مردم نیسته خود به بین روین اصحابه این خطاب به یک شخص ملاسه امام یعنی علاج رو دقیقا فرمونید سوال اینه که اونی که بین و مخاطب به اصطلاح اینوز یک اصل موضوعی گرفته شده آیا حجیت تعبدی خبره ظاهرا من آزی ها خیال کردن حجیت تعبدی اینجا محفوظ قرآنه نه نمیشته از آزی ها که آزی ها که آزی ها میشونم دیدم ما الان یادم میتریزی اینجا که استاد درمونه ظاهرم خیال کردن باید حجیت تعبودی رو بگیریم و اینجا اشتباه بجه به الله و جده بند اصابه از تخصیل که حدیث فرضش بر و حجیت تعبودیه اصلا این تحرید حساسی خبر اینه خوب دقت میکنیم اون زیر بنای در ربایت این همون است که این بنده دارم که اون که در اغلا هست حجیت اغلایی خبره نه اینکه به پتبا یعنی این حدیث مبارکه که خوب دفت با این تقریبا مفروغان انه لیکن نشده از نظر علمی مفروغان انه که نه حجیت تحبز خوب دفت این رو ما چون این نحن بخش مطرح نشده این اشکال که الان اشتبال هوجی بالا هوجی یا تازه هوجاتیه نه این نیست موتی این اینطوری نقطه موتیه پنی این است که آیا خبر مرمر نیو هوجیه خبره؟ چون عکس کردن هم متن که امام باشد سلام الله علیه در مقام و بیان موتیه ایمیه مخاطب هم ملاز و فقیده است و مخاطب افراد عامی است. انظر الى رافي بن و بعدم خود مخاصم این تعبیر اسواد مولا است فرد مله است که و ابن عمر نه انذا خیلی دقیق سوال جواب میکنه میگه خب شما در مدینه نشستید اثر یکی از مهمترین ما همینه کلام یکی از مهمترین علل مشکلات روایات ما اختلاف دوم شهر به اصطلاح اون صدور روایت با تدوین روایت این در مشکلات ماستی بیرون بواسطه باید... یعنی اینکه سوال میگیرن که چرا این مشکلات در روایت ما پیش آمده یکیش اینه چون این افراد تو ایام حج یا جای عمره مشرد میشن مدینه از امام میشنوفتن بعد در کوفه تدوین میکنن صدور روایات ما در مدینه است تدوینش در کوفه است صدور در یک جاست تدوین در یک جا و وقتی دیگه که گفتم خمره جهانزره با چه ظرافتی؟ ولی با درد میگفتن اینجا مقدم با, با چه ظرافتی؟ میگه خب این دوتا تا فقید مختلفند. میگم خب امام، بعد امام چنان میگه هر دوشون ارزش میگه خب اینا مستندات علمیشون نگاه بکنید. میگه خب اینا به شما استعارف کردن، به روایت شما استعارف کردن. و روایت شما متعارضه. دقت کنید. خوب تعامل کنید. این روایت یک نقطه خیلی تاریخی لطیفی هم داره که معلوم میشه تا کجا امام تا عوض را قبول میکنه. چون عرض کردن طرف مقابل یه مرد است خب این وقتی میگه روایتی که از اصحابه شما مختلفه. امام دیمی فرماید مختلف صحبت نکردن. قبول نمی کنه. نمی من تا عوض نیست. میگم خب شما گاه باید ده نفر یک چیز گفتن یکی یک چیز بختن اون که یکی یک چیز گفته اشتباه کرده اون ماله من نیست اون ده اگر اون اون کن بکن میگم این نقطه این اونجه این خود و ده اشهاد من نادر به این در مجمره یاریفی بعد دیگه که امکان کلاه همه مشهوره این میگه آزوازوی میشه دو خبر پنج تایی نفر پشت تا نفر از روادی که از مدینه اومدن اینجور گفتن 5 شریکمون بودی دقت بکن امام نمیتونه این نیست یعنی که انما امام مطلع نکنه چیزی شده واقع شده نمی تونه که هر چیزی نیست میگم بله مطابق مثلا با جلب سیاسی بوده تقریر صادر شده خب دقت بکن بعد از امام میگه خب ما میدونیم اینا همه کاشفه از اینه که امر بن حنبل یک شخصیت علمی گاهی میشه که اهل سنت یک روایت دارن اما جبه و اجتماعی و فقریه حاکم چیز دیگریه کدوم روایت کدام روایت شما تقییه هست گاهی روایت شما دو تا روایت یکیش با روایت اونا متابقه یکیش با جبه فقری متابقه با جبه اجتماعی تقییه تکنی به چقدر زرین سوال میکنه دو تا روایت شما میگید متعارض یکیش پس اون با مطابقه یکی با فتوای کلام بشه عمل میشه پس اون درستگاه خلافت عمل میکنه و درستگاه خلافت عمل میکنه با اون قد... چقدر دقت این عمرت نمازنه اما میفرماید با درستگاه خلافتی حساب بکن نه با روایاتشون با واقعیت عینی جامعه احل سنت حساب بکن نه با مساجر علمیشون با اون رعیت مشروع با سوال میکنه خب گایی افاد میشه که هر دو با جبه علمی با جبه اجتماعی موافق خب بکنید؟ دو تا رویات شما یکیش موافق با جبه خارجی با محیط اجتماعی و علمی خارجی یکیش مخالفه خب دقیق خب این سوال رو اینجا میگارید امروز نهازد یعنی هی امام میفرانش ادر فرقه هستا تلقه ها امام دست نگهدار تا امام رو ببینی این حدیث رو عادتا در کتابه از حال ما و اینکه در تا جایی که مستقف شد و مستقف شد و ترجیح نبود که حسلم تا عرز در تا احتیاط بکنه این حدیث رو بگی نورما ما از ترجیم این نیست مردم الله حمیث نیست این نیست ترجیم نهد بس تا عرز این تا احتیاط نیست در حیرت امام بخواهد بخواهد همان چیم چیزی این که تو بگی دو تا روایت متعارض من به اصحاب گفتم همه هم سقاط پنجتا از این برد پنجتا از این برد یکیش هم هر دوش هم با جبعه یا هر دوش هم با جبعه این هم که چی دید وجود میبینی تا اینجا امام قبول میکنن تا اینجا رو همیگوه اگر اینطور باشه امام که خبول میکنن این یعنی چی یعنی تا اینجا رو ما ق داری دیگه دیگه توارض غیبی دیگه دیگه دیگه, دیگه توضیح نداره که من بیام حیکای گفتم دوست بخاطر معمولی است مراد روایت شیعه وقتی اعلام ترجیح حتا طلای امامت احتیاض نیست که امام میگفته امام روایت اگر چه این موردی پیش آمد این رو باید از من سؤال بکنید تا من حل موری می‌کنم بقیه موارد رو میشام حل قاعده ای بشه راهش اما یه روزی کار می اینجا کشید که دو تا روایه از من بیاد هر دو رو پنج از دست به خاطر پنج از اصحاب نقل کرده هر دو هم مطابق با جنب اجتماعی یا هر دو مخالف خب دقت بکنید اگر روزی روزگاری چین چیزی رو دیدی دیگه من اینا حل نمیتونم برات بکنم باید پیش خودم مراجعه کنید که توضیح بدم این یک مشکل موردی می ده این قابل توضیح و عنوان قائده کلی نیست این مشکل موردی برای شده از حلش میکنن این در حقیقت دیگه اینجا رو قبول نمیکنن کنن امام فروز قبلی رو هی hey, امام قبول میکنن جواب میگن این فرض آخر میاد قشن سر میکنه امام رو برسته رو برسته کاملا امام رو برسته تا آرزه به سیار قدید کلم هاست انسان کاملا مزاد امام رو برسته نمیشه من ندارم همچه هر بی نشده. این نشده اگر خدایی نکرده مورد می که این پیش آمده این رو باید شخصا مراجعه کنی شخصا توضیح بدن این ازن فرجه حتی طلبا امامت به نظر من اینه یعنی این رو من باید شخصا توضیح این خلاصه شهر حدیث عمرت نهنزله تبقیه تصور ما پس به نظر ما در حدیث عمرت نهنزله و تعرض یک قسم یک جایی شکل خوبهی جاده من مهمتون حدیث همه حدیدی کرد. هم. به نظر ما در حدیث آمره نه انداره در این سه مبنا حجیت تعبودی خبر حجیت اغلایی خبر ازم حجیت خبر به نظر ما روایت مبنی در حجیت اغلایی خبر این تمام نکته در آمره نه انداره اینه نه اون اشتباه رو به لاجحیشون فرمانده به نظر ما با تحلیل علمی رو تحلیل علمی چی شد؟ ببینیم اون زیربنایی که در کلامه ما تو بحث از روز توضیح ندم فقط یه توضیح اجمالی توضیح مفصلت هست و شواهد و قرآنی تو بحث تعارض درست کردیم اما نمخواب همین اجماله. و نظر به زمن ما میاد خوب ده قسمه حدیث اون زیربنای علمی خود اصلا اون زیر بناش اینه لذا وقتی از امام سوال میکنه ببینید دنبال اینه که خبر گجهت رو تشریف بده امام در درجه اول میپسه دو تا حدیثه این هم امرو هم هست ببینید, ببینید اینجا امام در حقیقت در اینجا اختلاف ما با آقایان اینه امام تعبد شرعی به کار نمیبره امام تعبد اغلایی رو احیان میکنه چی ر... رج... این که چون اون میفهمه خصوصیات شهرت رو الحمدلله من اولش که عامه مردم میشه منظورو اونم میشه کار با من ندیدم تا حالا آخه بحثی دارن که این مجلس خبرگان رو اداره کردن ما تو بحثی بود نگه اشاره کنه شو بر حالا مجلس خبرگان که از جو خبرگان همه خود راض رو باشه که مخاطب اونجو خبرگان عامه مردم نیستن اندمو facem بحث سیاسی می داشت باشی بهترین بود که میشه ذکر کرد میذان ذکر کرد که این لوکسرو چون در کلمات آوردید لازم میشه که توضیحش بدید مخاطب ده عزیز اصولا تشریح اون فقید فنظر الله رب رواه حدیثنا و نظراتی حلال و حرام و علم احکامنا حالا ببین تبدیل و تبدیل و تعبیر خدیجه باعث تو اینه باعث شونه مخاطب انظور در حقیقت اهل خبره هستن نه میگه میگه ما چیکار بکنیم در کوفه چیکار بکنیم امام میگه فنزو این فنزو شیعه کوفه مراد نیست و اهل خبره کوفه مراده شما علمای کوفه بنشینید نگاه کنید یک شخصی که عالم به کام ماست او رو قرار بدید فهمی قجال تو و هاشما من رو هاشما قرار بده این چه خیری اولش ولایتی طبیعی تو فقرات بعدی هم همینطوره طوره ازن فرجه این مخاضر فرجه مثل عمر بن که این نشون میده که مرد ملاست خود به ما شهره. ای فرزم روشن شده اصلا حدیث از این جامل فرزم جان پیدا کرده اول یه چیز تحبویی رو بود کرده حدیث یه روحی پیدا کرد اصلا حدیث به نظر ما ناظر و دیگه حدیث ناظر نیست به حجیت تحبولی که ما دنبال ترجیح بری و من توضیحاً چند بار تو همین مبادر سخیرم رو از کردم اگر ماهوجیت حجیت قائل شدیم فرع حجیت تعبودی یک تا دو یک قوله به ترجیحه اصلا ترجیح در حجیت تعبودی معبوده چون ترجیح معموش چیه؟ معموش این که ما متعدد هستیم به حجیت این خبر متعبل هستیم به حجیتی این خبر هر دو چون تعارض دارن تنابض دارن نمیشه عدله تعبد متناقضه و متعارض این رو شام بشه این خلاصه برد چون نمیشه متناقضه این و متعارض این رو شام بشه لابوزگی که عهده ایمون این معنی حجیت تعبدیست چون عرض کردن شدارا در این مواد عرض کردن حجیت تعبدی اوامش بگی اینه که شارع یا قانونگذار، بیا یک معیار واحد نه حتی دو معیار قرار بده بگه هر خبری واجد این معیار بود حجتینه اصلا تو وصول پیدا بکنی نکنی اصلا پیدا بکنی نکنی دیگه هست نوثی حجیه تعبدی اینه باید معیار باشه بگه هر خبری که واجد این معیار بود حجت ولذا تعارض بدون حجیت ولذا تعارض همیشه این برقرار بعد از از میاد چون اگر خبر حجت نباشه که تاروز روشون تاروز رو حجت بلا حجت که من نداره خبر صحیح بازی اید که تاروز نداره پس باید دوست خبر محیار روشون مثلا اهل سنت محیار حجیت چیشی؟ اون عبارت از چیه عبارت ادارت راهیه این تاروز روش من داره این یه خبر ازکراویش عادله، اونم یه خبر ازکراویش آدل نشد یا مثل آهل کوئی ادهی محیار روشون وسا این خبری که که را راوی سقه اس م شارعم تعبد کرده شما خبر ثقه را قبول بکن پس طبق تعبد ما به هر دو باعد عمل بکنیم واضح اینجا تعارض معنا داره ا تعارض معناش اینه از ار کردم لفظ تعارض هم ما در روایات نداریم در روایات الاجیها که ما داریم به استسنا مطبوعه ذراره که خوی اسمش م بود پوشت داره حدیثان متعارضان که نمیکرد از الان اینکی درست نیست ما در هیچ روایتی کلمه تعارض را نداریم این تعارضی این است که بعد حصولی هم درست کردن ما که داریم عنوان اختلاف حتی در قرآن هم هست در وجه دوفی اختلاف هم کثیران عنوان اختلاف داریم یعنی هم کنه حدیثان مختلفان اینو داریم یا اتی حدیثان اهل اهز آیهمر و آخر یعنه ها این هم داریم. اما حیسان متاران نداریم یا چ دو انتعار روایات ااراب این هم نداریم این توزییات استارون بذد. تا یک یک نقطه است که بعض این اصطلاح یا ارز سر میچل که نه ارزان گرفتن که ارز این خودش اینجا در مقابل طول دیگه اصطلاح اند تا از عرضزه که در مقابل طول. یه توضیحی داره که چرا تا آرز و معنای تضاد و تنافی این شاده خیلی توضیحات چه اعرض میکنم ساده هم اشاره کردم به هر حال که که ما هم پس دقیقا بفرمایید تا آرز هر این که معیار و حجیت در هر دو باشه راست داره همین درست معیار و حجیت در هر دو باشه اون وقتی گفت اگر آمد گفت ولو معیار و حجیت در هر دو هست شما تعبدن یکی براب اصحاب ما هم ترجیح به همین همینجور دادن گفتن هر دو خبر حجت امام فرگونده در تحبوده اونه مشهور مشکل قبول بکن اصلا معمی ترجیح اینه اما اونه حجیت و اغلای. این حجیت تحبوده حجیت و اغلایی میگه ما شواهد رو جمع بکنیم تا به یک درجه مقبولی برستیم که این خبر در خصوص حجته نه اون یکی ما باید بگیم برست لذا، چون یک شاهد واحد نداره تعبد واحدی نداره باید مشموعه شواهد باشه اصلا فرض حجیت با تعارض نمی کنه بکنه حجت نیستن حجت عبارض از خبری سیبون وصوق داره ممکن نیست تعارض در این پر. چرا چون دوتا وصوق متضاد که ممکن نیست ممکن دو دوتا خبر متعارض باشه اما دوتا حجت متعارض نداره و به عبارت دیگر اگر میخواد تشریف خبر حجه و بده اول باید تعارض حل بکنه یعنی اگر به اول دید دو تا حدیثه باید اقامه شواهد بکنه که به اینی ای که عرض میکنن بعد از اینکه اقامه شواهد کرد به این عرض میکنم اون میشه حجت اون یکی دیگه لاحجه پس در حقیقت این اشتباه الحجه و لاحجه که در مواضی فراهم اگر محلی باشه روی به اصطلاح تعبودی دلیلی برای چیست اگر مردی باشه برای حجیت اغلائی که زهابیشون نمیخواد ما اصلا مؤتمریم که این روایت نازره به حجیت اغلائیه نه حجیت تحبودی این داره روشن شد برای حجیت اغلائی هم تا اصلا درش معنا نداره در حجیت اغلائی اصلا تا معقول نیست چون در حجیت اغلائی حجیت اون چیزیست که ما وصول به اطمینان یا قطع اورفی، یا قطع حقیقی به او داریم که این کلام امام هست و این حجیت از بر خب این در دو طرف نمیشه که امکان ندارم و ازا به طور کلیه ارز کردم سابقا بنابرای حجیت تا عدودی تعارض تا بعد از حجیت بنابرای حجیت اغلایی تا تعارض قبل از حجیت بود حل بشه. اصلا تا آرز نیست اگر تهاروز ممکن نشد ترجیح هم ممکن نیست تهاروز نشد ترجیح هم نخواهد شد وقتی ما در جایی تهاروز نداشیم، خواهی نخواهی ترجیح هم نداره. لذا خوب دقت بکنید ما بنده به نظرم میاد که راه درست در این حدیث عمرت نه هنزله این نقطه است. خوب دقت بکنید اون نقطه صحیحش اینه آیا این حدیث عمرت نه هنزله در کلامی که بین او و امام زیر بنا قرار گرفته، تحجیهت عقلایی خبره یا حجیت تعبدی خبره. این نکته اثر می‌کنه در کجا؟ در این زیل حدیث این عبارت فئن المجما علی داره این اینکه میگه خود به من شهر بین اصحاب و دع شاذ نادر، نادر این تعبدات از امام فه اینل مجمعه لاره بفی تابده <تصفيق> یا فه اینل مجمعه لاره بفی این در اوهلا به مجمعه لاره میکنن به شازه نازه عمل نمیکنن و این اقتصاد به من نداره نه ش... به من به عنوان جهفر محمد برای شما سلام سلام محمد علیه ما شما از یک نفری برای شما نرازه فرد فرد کن بقا هنگه نگه پیش این آقا گفت یکی بگه من اونجا جور دیگه گفت خود شما طبیعتای چه کار می یه هر پنش رو پنشت درستونی که درستونید این حجیت هر بودی این, این یک حجیت که اگر افراد زیادی مثلی رو نرد کردن و در مقابل یک نفر نرد کرد ما در سوق اوحلا میگیم این درسته اون باطل خود این نسیجش با اوخوییه که شد ما هم علیمونی که مردم ها اوخویی یاده که اینطور در خیلی لطیق سر کردن تو مثلا باز رو رو بشن اما چون ذهنیتشون به حجیت تعبدی بوده سعی کردن با اشتباه حجیت به لاحجه حرزش رو خونن. نه اصلا خبر میارش رو حجیت و, و است نه تعبدی یعنی اون راهی رو که ما رفتیم عبارد از این که اون زیر که امام دارن با حالا دقرد همون چون اولا فرض هر که طرف مقابل الله. طبعه امام که بیدید وقتی با عالم صحبت میشه خواهی نخواهی باید زیربناه های علمی به ارتکازات رو پیدا بکنیم اون زیربناه لذا ما از این راهوال شدیم اون زیر بنای علمی که به این مخاطب و متکلمه چیه حجیت است اگر حجیت تعبودی گرفتیم تعارض فرض میشه و امام هم ترجیح داده اون هم میشه تعبودی اصلاح هم ترجیح نباشه هم خیره اما اگر حجیت و, و اغلایی گرفتیم اصلا تااروز فرض نمیشه اصلا امام که تااروز نیست این واضح مال من نگم واضح باطن خیلن مجمله. مجمله و این مطلب هم اختلاف به ما معصول نداره یعنی کلام امام صادر شده به ما هو به حساب معیار و با یک معیار و اغلائی. از غیر امام معصول شما هم کنیم ده نکار یک شرطی مسئله این نه در یک جلسه. یکی بیا نه آباد تو همون جلسه هم چیز دیگه فرموندیم. قبول نکنیم که ما. این ده تو با یکی این یکی اجتماع که در اون ده تو پس من این به ذهن ما میاد که حل اساسی این دوباره اینه نه اون راهی رو که استاد رفتن ثابت کردیم از کردن. شاید هم به ذهن ما میاد شاید هم بزرگان بردگار. مثل کلینی که بعد های این حدیث آوردن یا شیخ تولسی اصلا ذهنیتشون همین بوده که من ارز کردم لذان تو باب تا آراض با امانو مرجع نیابردن به ذهنشون هم نرسته مرجع اونی که به ذهنشون رسیده یک حجیت و درست هم هسته بگاه حجیت و اصلا توش ترجیح به شهرت معنا نداره. شهرت در اینجا تأثیرش در این است که ما اچمینان عرفی پیدا می‌کنیم به صدور یعنی یک حجت عرفی است که این طلام صادر شده مثلا